الا بستان بیستمه مه 2008. الا سرش را روی میز آشپسخانه کنار کتاب نیمه باز گذاشته بود و با دهان باز خوابش برده بود در خواب میدید که در کاروان سرایی کنار جاده است توی کاروان سرا پر بود از جنگجویان تنومند رقاصان رقاسان اشوگر و درویشان اسرارامیز توی بشقاب های پیش رویشان شیرینی و کلوچه خانگی بود بعد یک دفعه از کاروان سرا بیرون آمد مکانها انگار روی هم لغزیدند خودش را از دور دید در دیاری قریب در بازاری مثل لانه زنبور شلوغ و پر همهمه با دست بچگی این ورانور می رفت شاید دنبال کسی میگشت. آدمهای آدم دور و برش آرام و آهسته حرکت می کردند. انگار به نوای نقمه می که فقط او نمی توانست بشنود خواست از تردستی درشت هیکل و سبیل از بناگوش در رفته چیزی بپرسد اما دهانش را که باز کرد متوجه شد نمیتواند حرف بزند مرد خیره نگاهش کرد و راهش را کشید و رفت الا این بار خواست با دکدارها و مشتریهایشان حرف بزند اما همان صحنه تکرار شد نتوانست دردش را به کسی بگوید ابتدا گمان کرد چون زبان این آدمها را بلد نیست نمی تواند دردش را بگوید. اما موقعی که دستش را به طرف دهانش برد، وحشت کرد. زبان نداشت. زبانش افتاده بود. مثل ناخونی سیاه شده. دست با چه دنبال آینه گشت. می خواست بداند هنوز همان آدم است یا نه. اما در بازار به با آن بزرگی، یک آینه هم نبود گریهاش گرفت با صدایی که انگار بر گوشهایش پنجه می کشید از خواب بیدار شد تا چشمش را باز کرد به سرعت دستش را به طرف دهانش برد تا ببیند زبانش سر جایش هست یا نه خب زبان که سر جایش بود بعد به طرف صدا برگشت و سایه را دید که مثل دیوانه به در پشتی آشپزخانه پنجه میکشد. لابد حیوانی به باغچه پشتی وارد شده بود. حیوان که در آنجا میگشت سک هم در اینجا دیوانه میشد. سایه به خصوص با راسوها اصلا میانش خوب نبود. هیچکس پارسال زمستان را فراموش نکرده بود، که توی حیات به یکی از آنها برخورده بود سگ به راسو حمله کرده بود راسو هم با دادن بویی وحشتناک انتقام گرفته بود مجبور شده بودند سطل سطل آب گوجه فرنگی بگیرند و سایه بیچاره را با آن بشویند اما باز هم چند هفته طول کشید تا آن بوی گند که به بوی لاستیک سوخته میمانست از بدنش پاک شود. الا به ساعت دیواری نگاهی انداخت. ساعت سه بعد از نیم شب بود. دیوید هنوز برنگشته بود. شاید هم هیچ وقت برنگردد. جانت جواب تلفنش را نداده بود. شاید هم هیچ وقت جوابش را ندهد. در وضعیتی نبود که به جنبه خوب وقایع فکر کند. این خیال که هم شوهرش هم دخترش ترکش کرده باعث شد دلش بگیرد. با این فکر و خیالات بلند شد در یخچال را باز کرد. با چشمانی بیرمق داخل یخچال را نگاه کرد. حوست کرد ظرف بستنی توت فرنگی را که توی جایخی بود بقاپد و با قاشق به جانش بیفتد. اما یادش افتاد که هنوز اضافه وزن دارد و در یخچال را بست. بعد با آنکه عادت نداشت تنهایی بخورد، شیشه ای از ظرف کنار یخچال برداشت. لیوانش را پر کرد. عالی بود، قوامدار و روح افسا. مزهش هم همانطور بود که دوست داشت. کمی گس، بوی جنگل و قارچ و خاک میداد اما وقتی داشت دومین لیوانش را پر میکرد با خود گفت نکند یکی از بردوهای گران قیمت دیوید را باز کرده باشد. با نگرانی اتیکت را خواند. شاتو مارگو ۱۹۹۹ وای، دیوید این شیشه را برای شبی خاص نگه داشته بود. نمیدانست چه کار باید بکند. ابرو در هم کشید و به شیشه نگاه کرد. اما بعد انگار از زیر بار سنگینی خلاص شده باشد شانههایش را تکان داد خوب، امشب هم شبی خاص بود تنهاییش را جشن گرفته بود لیوانش را تا ته سر کشید دوباره پرش کرد دوباره که پشت میز برگشت ملت عشق را به دست گرفت و ورق زد اما نخاندش آنقدر خسته و خوابآلود بود که حتی یک خطتم نمی توانست بخواند. به جای آن به اینترنت فصل شد و سراغ صندوق نامه های وارده رفت. و آنجا لابلای نیم دوژین نامه نامر بود درست زیر یادداشت کوتاه و بیروه میشله که در مورد کار گزارش نویسی کتاب پرسیده بود ایمیلی را که منتظرش بود پیدا کرد. عزیز زهارا فوراً به نامه جواب داده بود. الای عزیز نامه غیرمنتظرت را در گواتمالا در روستای دورافتاده ای به نام مومستنانگو دریافت کردم. این روستا از معدود سکونتگاه های روی زمین است که هنوز در آنجا از تقویم مایا استفاده میکنند. روبروی پانسیونی که در آن اقامت دارم، یک درخت آرزو هست. به شاخههایش نوارهای پارچهای با هر رنگ و طرحی که به فکرت برسد بستند. محلی ها اسم این درخت را گذاشتند، درخت دلهای شکسته. کسانی که دلشان شکسته، اسمشان را روی کاغذ می نویسند و به شاخه های این درخت آویزان می کنند. بعد برای پیدا کردن درمان دردشان دعا می کنند. امیدوارم پا را از حد خودم فراتر نگذاشته باشم. اما بعد از خواندن نامت پیش درخت آرزو رفتم و دعا کردم مسئله که بین تو و دخترت پیش آمده حل بشود آدم چون خوبی اطرافیانش را می‌خواهد در کارهایشان مداخله می‌کند اما راستش فایده هم ندارد من خودم از وقتی دخالت کردن در کار دیگران را رها کردم و توکل کردم راحت شدم. از نظر خیلیها ها توکل کردن به معنای منفعل ماندن است. اما درست برعکس. توکل حالت آرامش محس است که پذیرش و سازگاری با خود به ارمغان می آورد. نیست. اکتیو است. می تواند حالتهایی را به ما عرضه کند، که قادر به عوض کردنشان نیستیم و به تمام معنا نمیتوانیم بر کیفیتشان واقف شویم با این حالتاست که میتوان به هستی با عشق نزدیک شد مولوی اعتقاد داشت عشق جان هستیست اگر این طور باشد حتی یک قطره اشرا هم نباید به هدر داد. بر اساس تقویم مایا، امروز روزی فوقلاده است. پیاماور تغییرات بزرگ و آگاهی تازه و نو شده است. باید پیش از قروب خورشید این نامه را بفرستم که انرژیش از بین نرود. امیدوارم اسمت که از شاخه درخت آویزان شده، گلهای رنگارنگ بدهد. در لحظه ای که اصلا انتظارش را نداری، از جایی که فکرش را نمی عشق در مقابلت ظاهر می شود. با سلامهای دوستانه عزیز الا نامه را دوبار خواند چه مرد عجیبی بود این عزیز. چقدر هم سمیمانه نوشته بود نامش را. نگفته بود این زن یک کاره چرا برای من ایمیل فرستاده با جدیت و صمیمیت جواب داده بود یعنی چه جور آدمی است هیچ یک از کسانی که می شناختشان چنین نامه‌ای نمینوشت؟ راستش اینکه که ای در آن سر دنیا برایش دعا کرده بود تحت تأثیرش قرار داد چشمهایش را بست، تکه کاغذی را در ذهن مجسم کرد که اسمش رویش نوشته شده بود، مثل بادبادکی در باد، خودسر، آزاد، سبک و همانقدر خوشبخت. چند دقیقه بعد در آشپزخانه را باز کرد. به حیات پشتی رفت. نسیم صوبگاهی صورتش را نوازش کرد سایه فورا پیشش آمد معلوم نبود چرا با استراب هوا را بومی کشد چشمهایش را تنگ کرد گوشهایش را سیخ کرد انگار میخواست همه ی را جمع کند در آخرین لحظات بهار در باغچه پشتی خانهی لوکس در آمریکا، ماه و عبر در آسمان، الاو و سگش روی زمین کنار هم ایستادند. راستش نسگ پیر عادت داشت به بد اقبالی و ابهام زندگی، نساحبش. هر دو نفسها را در سینه حبس کردند و به تاریکی نگریستند. در حالتی میان ترس و نگرانی